بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشراف الانبیاء و خاتم النبيین و آله اجمعین اما بعد ختام درس چلو هفتمین درس از دروس شمائل رسول الله عليه صلی و السلام تعلیف امامة المدی رحمه الله و غفر الله و اسکن فسیح جناته پنجوه باب و باب از کتاب شمايل باب و ما جاє في رؤيه رسول الله سوسن في المنام انشيزي که و ماده در مورد دیدن رسول الله سوسن در خواب دیدن رسول الله صل الله عليه وسلم در خواب از حدیثی که اومده. آخرین بابم گذاشت کسی که میخواد ببینه یا کسی که ادعا داره دیده باید این چهار تا حدیث بلد باشه تا قضاوت بکنه که اون کسی که دیده تو خواب رسول الله صل الله عليه وسلم میونه آخر گذاشت. شیب دنیا خداي من همیشه تعریف کردم اینجا هم تعریف میکنه دنیا خداي نماز دمی خون. گفتم چرا نماز دمی خونی؟ که من که پیغمبر تو خواب د خب چطور دید پیغمبر تو خواب گفت که دیدم لباس بلوچی پوشیده بود نه گفتم شکلشو میخوام چهرهش قصه صورتش گفت که سبز بود گفتم لا حول ولا قوه بالله العلی العظیم کجا بده خدا بذارم سبز نبود خب رسول الله صلی سفید بود سفیدیش مایل به قرمزی بود سبز نبود گفتم ریشاش بگو چطوری بوده گفت ریشش تهریش بود بعد آنکاد کرده بود خب این رسول الله را تو خواب دیدی نه شیطان دیده شیطان دیدی تو خواب رسول الله صلی الله علیه و آله میگه شیطان به شکل من در نمیاد یعنی به شکل واقعی من یعنی اگه کسی شکل واقعی من میدونه طبق شکل من اگر من رو تو خواب دید نه خود منو دیده یعنی شیطان نمیتونه به شکل من در بیاد خودش رو به شکل هر کسی میتونه در بیاره میشونه به شکل پدرت مادرت حتی به شکل خودت در بیاره تو خواب به شکل هر کسی شده در بیاد شیطان گولت نزنا مثلا همین دیروز یه بنده خدایی رقیه می خورد مردوم این اون اینا که زده شده بودن جنگیری میک الان بعد از مدتی که جنگیری کرده، او کلی مردم شما تلفن و تماس و فلان و برای مردم نسخه پیچیده از عسل و انواع دارو و عشاب می‌فروشه برایشون. الان داره ادعا می‌کنه حالا بعد از مدتی یکی از دروگری‌هاش گفت که بله، میگه من فرشته هست، با من ارتباط داره، میاد به من میگه این کار بکن، اون کار نکن و حرفاش هم درست در میاد. میگه مثلا به من گفته برو فلان مسجد تو اون فلان منطقه، فلان ساعت برو میاد. میگه رفته اونجا، برون اومده. خب حتما فرشته است که نمیتونی شیطان باشه شیطان که خبر نداره که اطلاع از غیب داره، میگه کی برون میاد که بارون میاد میاد این جنام حریفنا رفتن تو هوا شناسی دیدن دیگه حالا فهمیدن اطلاع یه چیزی خبری به گوش رسیده رفتن تو خوابی منده خدا گفتم بهش بله ما هم فرشتگان خدا هستیم براتون معنی وحی بکنیم برو فلان مسجد بارون میاد رفتن بارون اومده حالا باور کرده که برای اون هم فرشته هست که داره بهش وحی میکنه مگر پیغمبری خب پس این خاتم النبی این چیه مگر پیغمبر قد نشده مگه وقتی پیغمبری ختم شد خاتم النبی این شد و گفتی که خاتم الانبیاس یعنی دیگه تو حق نداری ادعا بکنی که تو خوابم پیغمبر اومد گفت حالا نماز بخون نخون وحقت شد, الیوم لکم دینکم. دین شد. رف. نگو دیگه تو خواب اومده مثل بندی خوده که دروغ میگفت پیغمبر اومده تو خوابم به من گفت هزار بار تسبیح بگو لا اله الا الله تسبیح خوبه ولی هزار بارش تو از جیب تو هست از جیب اون شیطانی هست که تو خواب تو این بدعت را خورد ملت داره میده بعضی ها اینطوری شداد دینشونو دینشون شده خواب تو خواب فلان شیخ دیده مولوی فلان دیده نم. فلان عالمو نم. فلان علامه دیده نه علامه و نه عالم و نه مولوی دین نه کم میشه نه زیاد تصویحات و اوراد من در آوردی نیست دین کامل شده تو از کار خواب داشتین. صحابی فقط جابجا میکنه و به نبی که الذي میگه به رسولك الذي ارسل رسول الله صلی الله علیه و آله چی میشه؟ گوششو میگیره می میگه من چی گفتم گفتم به نبی که الذي ارسل وله رسولك الذي ارسل گفت که نبی که الذي از کار خابا نبی هم و رسوله ولی نه اینطوری یادش داده بود یک لفظ جابجا میکنه فوری رسول الله صلی الله علیه و میکنه براش حالا تو حساب بکن یک کتابی دفتری نوشتن برای خودشون کلی اوراد از پنج گنج و نمیدونم چند گنج و انواع خرافات و همیش با خواب و خیالات همه قاطی کردن داره به خورد مردم میده خواب نه درش تشریع نسخه چینی هست بخواد اورادی باشه بخواد عبادتی باشه طاعتی باشه صدقه باشه خواب محل تشریع احکام نیست خواب دلداریه خواب دلگرمیه خواب یا گاهی بشه هوش داره رسول الله صلی الله علیه و تو خواب ببینی هست باب دلداریته دلخوشیه نه اینکه بیاد الان مثلا بهت بگه که حالا تو دیگه الان دیگه نماز نخون نه رسول الله صلی الله علیه و آله برشقات شد درف نماز سر جاشه نماز دیگه قد شدنی نیست تا قیامت برپا بشه نماز قد شدنی نیست نماز برپا است همون طوره همون نماز همون پنج وعه با همون ارکان و هیئت باید خونده بشه نه هیئتش عوض میشه و نه ارکانش عوض میشه اینکه فلان شیخی عالمی مولوی میاد میگه تو خواب من دیدم پیغمبر به من این توصیه کرده به امتت بگو یک زمان راست بود شیخ حرم تو خواب دیده پنج دونه تخم مرغ را ببرید کنار قبرستون بذارید فلان میشه بعد یا برید پیش یک کسی به مردم بگید که امشب که شب جمعه هست هر شخصی بیاد پنج دونه تخمور صدقه بده کنید نشعت یک خرافه از کجاست هست یک خوابی از یک رویایی از یک الهامی فلان شیخ دیده فلان نه دینمون رو از خواب نمیگیریم دینمون از خواب نمیگیریم دین کامل شده اگر رسول الله هم اساسا تو خواب دیدی بعد اون شکل و که بيأي تطبيقش بيدي روی اون احاديث اگر همون طوری که وضع شده توی حدیث صحیح بسردش بکسی نجو حسدت میکنه یکی که شما گفت به بغل دستیش دیگه دوباره خواب تکرار نمیشه برات بکسی بین خودت خدا ما شاء الله جل و اکرامت کرده چیزی که الله جل و علا اکرامت کرده کل دی نعمه مقبول هر صاحب نعمت مورد حسادت واقع میشه این نعمت ی الله به داده بعضی میان میگن که خواب من رسول الله صلی الله خواب دیدم خب بهشون میگم چی تو خواب دیدی میگه چهره نورانی گفتم خب چی یک نورانی، خب چی؟ چراقه، لامبه، مهتابیه، نور افکنه، چی چراقه لامپ مهتابیه نور چی دیدی خب یک چهره نورانی، خب چی نورانی؟ بینی، ریش، مو، بادی چیزی باشه که من بدونم که خب چی دیدی تو؟ میگو یک نورانی دیدم، تنها چیزی که من به نظرم میرسه توی این حالتها اون خود شخص میگه که به من گفتش تو پیغمبرم. تنها چیزی که من به ذهنم میرسه تو این چینی رؤیاها و خوابها، این که این شخص دروغ نمیگه، راست میگه، نوری دیده ها و گفتنم بهش این پیغمبره. ولی که یه چیزی که هست، شخص باید اینجا علامت استفهام جلو خودش بذاره، چرا من لیاقتش نداشتم؟ خود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با هیئتش، با ریشاش، با اون چشمای درشتش، چشمای سرمه شده‌اش. چرا اون هیئته رو ندیدم حتما یه قصوری دارم حتما یه نقصی در عبادتی در طاعتی در یعنی لیاقت و شرف رویت رسول الله نداشتم که این نورو دیدم دیگه پس برو به خود بر بگه. توبه کن برو ملتزم به سنت باش راه رو به راه رسول الله صلی الله داشته باش تا این لیاقت شرف را پیدا بکنی رسول الله صلی الله علیه در خواب ببینیم شورسدو شيشومين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي أصلى صلى الله عليه وسلم يفارميان من رأني في المنام كسي مرة دار خاب بينه فقد رأني وقيت من وديه يعني هامن شكلي كمن شكل منه يعني فان الشیطان لا يتمثل ب شیطان به چهرهی من در نمیاد به شکل من در نمیاد یعنی به شکل من در نمیاد یعنی به شکل واقعیش، اش اما به شکل غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم مذه اون کسی که تهرش داشت به شکل یک شخص سیاپوست بیاد یا سرخپوست بیاد که رسول الله صلی اللہ علیه هیچ کده مزه رو نبوده مثلا شاید به انتخاب یک شخص و شخص میدونه که این داره دروغ میگه شیطانه به شکل کسی دیگه اومده داره میگه من پیغمبرم هر جا هر جا تو خواب دیدید الا پیغمبر یا هر کسی نوری چیزی دیدید تو خواب از یه چیزی خواست برو فلان کار کن فلان جو فلان چیز شده بدون که این شیطانه داره اغواد میکنه داره فریبت میده بدون موچشو بگیر بگعود به لمنه شیطان راجیم برو رو بیا بر نماز وزو بگیر شیطانه داره وسپسط بس میکنه داره اون مراحل جنزدگی رو بر تو اعمال میکنه تا اینکه تو کاملا جنزده بشی رفتی کارشو انجام داده رفتی فلان مسجد به این تمعه که حالا این فرشته اصلا میخوای ببینی که راست میگی یا نه این جن یعنی راه چیره گشتن بر تو رو پیش گرفته و تو داری قدم برمیدر به سمت سوی جنزدگی 477 حدیث امام ترمیدی رحمه الله میگید حدثنا محمد بن بشار و محمد بن بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي حصین عنه صالح، عنه برهيل رضي الله عنه غفر الله له ولأمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأني في المنام فقد رأني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه به حديث البخاري مسلم الألفز القبلي روايات الشهزيم من مسعود بود إنا زواته برهيل رضي الله عنه غفر الله له ولأمه كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا كسيك مرودار خاببين باقيات الشام يعني كم مروديدا شيطان الشيطان بالشكل ما ندر نمياد يا شبيه ما ندر نمياد شأر حديث امام التربيع رحمه الله مقويات حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خالifa عن أبي مالك بن عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأني مس حدث سابقية امام الترميز مقيه وابو مالك هذا سعد بن طارق بن أشعيا روايه روايات ابو مالك قوياه فيدارش فيدارش طارق بن أشعيا صحابي رسول الله عيسى وسلاه مس بمعنى حديث ابن مسعود وابو هريرة رضي الله عنهم أجمعين کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینه چنان در واقعیت بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده، چو شیطان به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمیاد. چورسادان نهومین حدیث، همون مثل مذیر حضورالله میگید حدثنا قتيبة بن سهید قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن عاصم بن كليبن قال حدثني ابي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه وغفر الله له و ولأمي يقول قال رسول الله صلی الله عليه و سلم في المنام فقد رأني فإن شيطان لا تمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقلت رأيته صلى الله عليه وسلم فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس انه كان يشبهه الله صلى الله عليه وسلم يرميان كسي كما درخاب ببينه شلون چه من بالواقعيت بودم مراديده شو شيطان بشكل من در نميات خب راوي عاصم الكلب اس بدرش كلب در نق میکنه از ابو فقلت كي ميگه كلب راوی عزبوره را قال ابی فحددث ابن عباس رفته پیش ابن عباس ردانه همه گفتم تو فقط رأی تو من رسول الله را رسو سرسم دیدم اون چیزی که بیادم میاد از اون چیزی که دیدم تو خواب چون رسول رسو الله را سرسم این تابعیه کلید پدر عاصم راوی از را میگم چیزی که الان من بیاد دارم حسن من العالية سنة شهرية رسول الله صلى الله عليه وسلم شجت كذا خاب ديدام إنكار حسن من العالية حسن من العالية رديدة طبيعية فقلت شبته به يعني حسن من العالية والشابير رسل الله صلى الله عليه وسلم ديدام ير رسول الله صلى حسن ديدام فقال ابن عباس إنه كان يشبه شو ابن عباس خاب ديدابوت رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدابوت مجيب بله حسن من العالية شبها رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدهم من حديث ما من رحمه الله مقيات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدياً ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي سوسنا في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله سوسنا في النوم فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع يتشبه به فما في النوم فقد رأني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظات ما استطعت أن تنعته فوق هذا خف حدیث قبلون البته سهیه دار مسلم و احمد هست حالا اینجا البنی روایتو تحسین میکنه ترمذی هم اینجا میاره که یزید فارسی کيه یزید به هرمز یزید رقاشی هاله اختلافاتی تو این هست طاعیه ولی خب این یزیدونه هرمز نیست البته اینجا ظن ترمذی بر اینکه یزیدونه هرمز است این یزید فارسی که مصحفینویش رو نویسی میکرد از روی مصحف برای نشرش اون بعد از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفت که من رسول الله را صلوات در خواب دیدم بعد عبدالله بن عباس را درنامه بهش میگه خب من شنیدم رسول الله صلی اللہ میفرماید کسی که من را در خواب ببینه چنانچه من در واقع بودم حقیقت رو دیده من را دیده طبق اون چیزی که من بودم چون شیطان به شکل من در نمیاد الى آخر خب اینه شیطان لای اصطاقی انتشبه بیشه شیطان نمیتونه به چهره من در بیاد به شکل من در بیاد خب سوال ازش میپرسیم نه عباس هل تستطيع ان نعت هذا الرجل میتونی نعت فتش کسی که تو خواب دیدی رو برام من بگی الی رایت چون عبدالله بن عباس رسول الله صلی الله علیه و آله دیده بود چون چه حدیث قبلی داشتی، از حدیث کله می خوب میتونی برام نعتش رو بگی وصفش رو بگی قال نعم گفت که بله نعتش نعتو لك او نعتش میگه میگم بیت رجلا بین رجل مردی قامتش بسد نہ قدش بلند نہ قدش کتو خب اولی درستنا چه داشتین در دا ابتدا این کتاب از وصف رسول الله صلی الله و لحمه آسمار ایل رنگ پوسش سفید مایل به قرمز بود ولی خب اینجا میگه سبزه سبزه کمرنگ رنگ یعنی منظور همون سفیدی یک کمی شاد اما چون مایل به قرمز بوده شد اینجا بوقت همین میگه که اسمر ایل یعنی سفیدی یک مایل به سبزی یا همون قرمزی لی خب سفید بودن رسول سر ولی نه سفید خالص اک حال العینن انگار که چشاش سرمه زده حسن وضحك لبخند و خندهای داشتن وجیه که رسول الله زمانی که می‌خندیدند کل دهانش باز می‌شود تشویق می‌کردم به امر در دنیای رسول الله زمانی که می‌خندیدند جمیل و دوائر الوجه زیبا بود چهره دائری مانند بود قبلا واسش اومده نه دائری کامل و نه هم چی بیزی شکل کامل یعنی نه کشیده بود و نه دائری کامل وسط بود نه خب سر رسول الله سر, سر بزرگی بود کوچکم نبود سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین هایدی الی هایدی اینجا راوی میگه که اشاره کردم به دوتا گوشاش نه رسول الله صلی کجا بود از این گوشش تا این گوش. پرپش بود چون در روایت قبلی داشتیم ابتداء این کتاب ریشه رسول الله ص پرپوش بود از این گوش تا این گوش بعد زمانی که ام رسول الله ص نماز می‌خوندن از پشتش می دیدن ریشه رسول الله ص ص ریشاش بزرگ بود کل گردنشو رو گرفت از گردنش پایین اومده بود کل رو گرفته بود گردن رسول الله ص گرفته بود تا پایین گردن رسول الله ص بود قد ملع نحره نحرینه گردنه گردن رسول الله ص گرفته بود پرپوش بود قال و ولا ادري ما كان مع هذا الناد دیگه اوف میگه کرابی از یزید است یزید فارسی میگه که من دیگه نمیدونم چیزای دیگه هم بود تو خوابه ولی خب من دیگه یاد ندارم یعنی که بگه اینجا به خودمون امن عباس در جوابش میگه لا رايته فليقضى مصطانه تنعته فوق هذا گفت تو در بیداری می بیش از اینم نمیتونی وسوسهش بکنی یعنی اون چیزی که دیدی همونطورم وسوسه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودی اون چیزی که تو خواب دیدی همونطورم تو بیداری بوده 411 امین حدیث قال حالا قال اوفون اهل عراوی انا اکبر من قتاده ان اکبر من قطده چرا اینجا مثلا میگه من از قطاد بزرگترم این راویه از اون تابعی که خواب دیده مد نزدیکی یا یید فارسی اومده خواب دیده پیشبدالله نباس درسته؟ راوی ازش کیه؟ عوف. عارف میگه من از قتاده بزرگترم بس تابعهیتشه بس اینکه از تابعین هست یعنی این خبر رو شنیده میخواد تاکید بکنه اینجا ترمیزی این روایت رو میاره از باب تاکید بر روایت قبلی که اون روایت متصلا اون روایت صحیحه یعنی این یزید فارسی که داره میگه که من شنیدم ازش بوده یعنی یک شخصی که خواب دیده و شنیدی ازش دروغ نمیگه یعنی این مهر تأیید بر روات قبلی، خاطر همین آلبانی تحسینش میکنه. چون تو اسم یزید فارسی که کی بوده اختلافه. که ترمیزی خودشم میاره که الا این یزید بن هرمز هست یا نه یا, یا, یا کسی دیگه هم هست اصلا غیر از اون یزید هرمز یا اون یزید الرقاشی یا یزید فارسی. ستاشون یکی این یا این غیر از اون دو نفره. و بیشتر از محدثین ترجیح میدن که این یزید فارسی غیر از اون رقاشی و غیر از اون یزید بن شعر سادة وزهومين حديث أمام ترميذي رحمه الله من قيات حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه ابن شهاب الزهري يعني قال قال أبو السلام قال أبو قتادة رضي الله عنه قال صلى الله سلام من رأاني يعني في النوم فقد رأى الحق هذه سيئة حدث قبل كسي كمارو دار خب بنا حق را دیده یعنی بر اساس اون چیزی که من در واقعیت بودم یعنی اون رسول اصلا در واقعیت بوده چهره رسول اصلا همونه چون شیطان نمیتونه به شکل رسول اصلا بیرون بیاد. شعر صد السيزة حديث إمام الترمذي رحمه الله مجال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي قال حدثنا معلّى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة حديث للبخورية مهاز حديث هيه. رسول الله صلی الله علیه و کسی که در خواب ببینه و چنان چک من در واقعیت بودم حقیقتا دیده، چون شیطان نمیتونه به شکل من در بیاد، به شکل شماهای الله صلی شیطان نمیتونه در بیاد. بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمودن خواب مومن جزئی از یک چهلشیشم وحیه، جزء اون من سته و از چهلشیش، جزء من النبوه، یعنی اگر نبوه وحی الله جل و علا چهلشیش قسمه یک جزءش فقط این الهامه. چی یعنی خواب شما، اول یک از فروشکه علاما میدن میگن که خواب شما در درصد صحتش دو درصد تقریبا تقریباً در دو درصد و یک چندصد می. یعنی اگر یک چهلشیشم در نظر بگیرید، چهلشیش زار زار دو بخوای بکنیم میشه نه و دیگه میشه صد. این یعنی تقریبا این یک میشه دو. یعنی دو درصد احتمال خوابت اینکه این خواب و این الهامت واقعیت داشته باشه. خیلی خوشباز نباشند صد و خوابت. خیلی تکیه نکن بخواب خیلی اعتماد نکن بخواب یا اینکه تعبیرش میدونی یا اینکه میتونید دنبال تفسیرش باشی کسی هست یادواری بکنه بگه خیلی خوب ولی بله اگر کسی نیست دنبال نباش خودتو دلتنگ نکن حسن خوابایی که انسان میبینه و فکر میکنه بده در حال خودش بد نیست مثلا خواب مثلا کسی که در شرف مرگ راه بیره خوب شده خب حس نخاتمش یا خواب کسی که دندوناش ریخته خب دندون مال ثروته میخوای کار بکنی یا خونت دیوارش میخوای درست بکنی دیواره دندون دیواره لازمش مرگ کسی نیست کسی که داره تو دستت بیفته کسی بکنه دندون جلو باشه دندون عقب باشه بلفرض مرگ باشه یک خوشحالی هست در قبال اون مرگ بلفرض اگر مرگ باشه فرضاً مرگ باشه یک جای خوشحالی هست بارو سفید از اون دندون سفیده فروسفیتی از دنیا رفته دل خودتو تنگ نکنی بشارته معمولا خواب بشارته تو دلتنگی ها یک شخصی داره میمیره ولی خب در قالب خودش الله میخواد یک مجدگانی بهت بده یک دلداری بهت بده دل خودتو تنگ نکن خواب همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برای بشارته خواب سوره خواب اول مژدگانی الله جل و علا بهشارت یی که هوشیاری باشه که یه کاری انجام ندی زبنده خدای گفت که خواب دیدم ادرار کردم بعد دست وردم تو ادرارم. گفتم تو مالی جنسی پولی از بانک وام گرفتی داری کاری میخوایی بکنی؟ گفت که چی یعنی؟ گفتم ربا رباخاری؟ سریح بگم دیگه گفت که نه گفتم پولی از کسی گرفتی از بانکی چیزی؟ گفت نه فقط تریلی خریدم گفتم خب رو با پول کی خریدی؟ گفت بانک بانک وام گرفته دیگه قرض و حسنه که بهش نداده که دست تو نجاست داره میاره چی اون؟ مال حرام تعبیرش و دست بکشت و ببکنه از اون مال حرام به دست داری توش میاری داری کار میکنی باش با اون مال حرامت با اون مال حرام این هشداره. این خواب نوع اول یا هشدار یا بشاره یا اینکه یه چیزی مثلا که میشه از باب دل دارید یا مثلا تسکین خاطرت مثلا شاید مثلا صحابی پیغمبرت تو خواب ببینید خواب نوع دوم خواب شیطانه که باید بیدار شدی از خواب تو وقتی سمت به تو بعد به الله پناه ببری از شر اون شیطان و الی آخر از اون آدابه که هست تو خواب چون شیطان رسول الله ص ص میگه هدفش دلتنگی تو هست غم جایی هست شیطان میاد باید بازی میکنه سر خودت رو تو خواب میبرن انگار هر دستشو نمیگیرن کلتو میبرن بعد اول انگشتاتو بعد دستتو بعد این ور آویز میکنن میزنن به دیوار خب شیطان داره پریشانت میکنه هدفش اینه که تو را به این درجه پریشانی برسونه خواب تو که بیشتر خواب زنا اینه میشم هم شیطان هدفش ها جدا دارم میگم میخواد اینها رو به یک نحوی چ ساده آازود باورم بنده خدا میخوام به یک نحوی اینا روشیتان هم میخواد ثیر بکنه که به جنگ با اون شوهر بدبخت خونه از سر کار اومده خسته و اینم از خواب بلند میشه اینم از خواب بلند میشه وشیطتان باید تو خواب کلی اذیتش کرده و کلی این ذهنیت رو براش ایجاد کرده این خواب به دوم این خواب و دیلی دست چپ توف بندازی و به الله جلوه پناه بر از اون شیطان این از با توصیه دارم میگم ساده نباش گل شیطان نخوری خواب نوع سوم حدیث نفس حدیث نفسیه؟ فیلم سینمایی سوار قطار شدیم بعد رفتیم ایزگاه راهند از بندر عباس حرکت کردیم رسیدیم به سیرجان سیرجان بعد پیاده شدیم رفتیم اونجا بستنی خوردیم بعد اومدیم تو قطار دوباره سوار شدیم چپس خوردیم بعد فلانی اومد بعد سر میز نشستیم بعد در پنجره رو باز کردیم رسیدیم یزد بعد پیاده شدیم رفتیم اونجا من جوجه کباب خوردم اون یکی اومد کوبیده خورد اب چیز جدیدی چی تو خواب شما دیدی این همه یزد رفتی شما کوبیده خوردن تو دیگه همه خوردهن چفتش هم خوردن پفکش هم خوردن همم تکراریه خوردن خب خب الان این دوباره تو خواب تکرار میشه 44 و 14 حدیث امام ترمذی رحم الله و حدثنا محمد بن علی قال سمعت ابي يقول قال عبدالله بن المبارک اذا ابتليته بالقضاء فعليك بالاثر حدیث تام شده حدیث تام شد این دو تا روایت آخری که داریم آثار هست آثار هست از علماون علمای تراز اول امت از اون کسانی که هم صحابه رو دیدن هم تابعین رو دیدن از اون تراز اول من که یکیسشون عبدالله بن موارکه میگه اذا ابتلیتا بالقضا اگر اومدی یک روزی قاضی شدی یک پست منصب دولتی بددادن فعلی که بالاثر فعلی که بالاثر فعليك که بالاثر ایک توسیه ایست توسیه ایست عبدالله بن به اینکه تنها جایی که میتونی خوب بد هم تشخیص بدی در حک کردن ب عصر رسول الله علیه و سلم و الصحابه فعليك بالاثر این, این یادت باشه خصوصا زمانی که تو میخوای حکب کنی رو کسی حکم بکنی رو کسی, بکنی رو کسی. این در پی چی آورد خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوای حکب بکنی که رسول الله زدم تو خواب دیدی علیک بالاثر بر به اثر نما کن چطور واسه شده رسول الله صلی الله علیه و سلم تو حقیقت بعد بیاد تطبیقش بده رو چی رو خوابت فعليك بالاثر هیچ راهی هم نداری جز این بالاتر همین 400 14 تا حدیث با ما رفت امام ترمذی تو به ما رو اینجا بکشونه که آخرش به امام بگه شما اگه آرزو در رسول الله صلی ببینید باید این حدیث رو هم داشته باشید و بهش عمل هم بکنید هم شرفش پیدا بکنید با راهروی از راهش لیاقتش رو داشته باشید ببینید و هم اگر دیدید بتونید قضاوت بکنید که واقعا رسول الله صلی الله علیه و یا نه کارین اثر این کتاب آخرین روایتی که داریم در این کتاب شمائل رسول الله علیه و آله و سلم 415 روایت امام تيربيذ رحمه الله مجيد حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين رحمه الله قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذا الحديث سخني كلام من بيته قفته مناخ كذا نزل حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدّي قرء أقوالي أزُّ علماء كما ورده جاد كرده دينا اگر دیدی شخص نشست جای من اینجا قصه و داستان تعریف کرد خواب گفت من رفتم اونجا فلان کار کردم نمیدونم میوه اومد سر ساحل و جمع کردیم و بعد فلان کس نمیدونم در بهش بهش باز شد و اون فلانی نمیدونم راه رفت فلان فلان کار شد و فلان چیز شد کارگزاری داد واسط و, و نمیدونم قصه و داستان برای خودش بافت و رفتیم آفریقا و بعد شیری اومد ما بگیره و بعد من شیری رو گرفتم و گردنش گرفتم گفتم جلوه به دعوتگر باید بلند بشی اینا خرافات و این داستان ها و چرندی ها تو ول کنا دیدی کسی این چرندیات رو تا میده بلند شو تو گوشت نرا دست تو گوشت بذار بیا بیرون این چرندی ها این خودشیفتگیه من رفتم شیر اومد جلو و هم جلو و شیرو گرفتم یا فلان طایفه الا بجایم به خودش نسبت نمیده نه فلان گروه بودن دسته بودن رفته بودن اونجا چله رفته بودن بعد وسط جنگل‌های آفریقا نمیدونم فلان شد شیره اومد و ببر اومد و یکی میگه فیل اومد و هر کسی هم برای خودش یه چیزی میبافه یعنی شیاطین براش الهام میکنن از اون کارها و کارگزاریا فریبش میدن خودشم نمیدونه در ریاکاری افتاده حالا بلفرد هم شده تو داری ریاکاری میکنید تو را در انداخته و جایی هم شیطان این کاری میکنه باسطا شیطانی برای اقوات برای فریبت مثل اون چیزی که از عبدالقادر گریم نقل کرده ما تو خوابش میگه من خدا میگه من کیم که دیگه خدا تو خوابم بیاد قرار برای این نیست که تو ادعای کرامت بکنی ها کرامت نصرت الله جللا وعده و این نصرت الله برای تو اگر بوده سترش کن نه که بیا ریاکاری بکنی بیا کارگزاری بدی برای جمعی تو مسجد افتخار بکنی فاخرشی بکنی نه نه این ریاکاری فاخرشیه درست نیست حرامه ریا شرکه شیطان تو را در شرک از غر نه شرک اکبر نگید که جو جوهری ما رو تکفیر کرده نه نه شرک از غره ریاکاریه درست نیست و اینجا چنانچه بنی سیری میگه رحمها الله حدیث دینه فنظر عما نتأخدون دینا که خود حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دینا حدیث رسول اسکسی نش نبیا اسکسی که سقهاس بش نبی اسکسی که موسوقا حدیث صاحیح بیا تو میگه بش اگر دیدی حدیث دروغ بیا تو میگه دیگه نش نیست از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلما تو مسوم بدار از حدیث دروغ جالی خودتو مسوم بدار چون دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و دروغ بر اللهه و وظیفت اگر دروغش نیستی بلندشی اونجا؟ بگی که این دروغها منکر نکار باد بکنی یا اینکه یعنی نشینی اگر نشستی باید این کار منکر بکنی دروغه دروغ بر رسول الله اللہ علیہ وسلم جرمه جنایته دروغ بر رسول الله اللہ علیہ وسلم دروغ بر اللهه حتی اگر بگی تو خواب دیدم رسول الله صلی الله علیه و آله ندیده باشی روز قیامت الله جل و علا دو گندم بهت میده دوتا تا جو بهت میده میگه گره به هم دیگه بزن و هرگزم نمیتونی شکنجهت میده الله جل و علا در جهنمش دروغ بگی که من تو خواب رسول الله رو دیدم آله و صلی الله علیه و آله یا خواب کسی را دیدم خواب فرانچیزی رو دیدم خواب مصلحتی بخوای به کسی بگی یا قول خودت موجبش بیدی تو عذاب میبینی به خاطر اون خواب جعلی دیگه چه برسه حدیث جعلی میگی بر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمای من رو عنی حدیثا یرا کسی که نقل بکنه حدیثی را بر رسول الله صلی الله علیه و نقل بکنم دروغی نباشه او احد خودش یکی از دو تا دروغگانه دروغی اولی که گفته دروغی دومی هم تو که داری حدیث به میگه. میگی دروغی سومی هم تو که نشاسی پای اون دروغ دروغخوری دارن میکنن تو دروغ خوری میدونی دارن دروغ میگن تو نشاسی اون دروغه را که دارن بخورادت میدن دارن میشتوی بر حذر باش راضی نباش کسی برای پیغمبر رسول الله علیه و سلم دروغ به باف دروغ ببنده دروغ بگه باید ولابرا داشته باشیم نسبت به رسول الله صلی از حبمون بمون به رسول الله صلی نباید راضی بشیم کسی حتی اگر بخوبی هم شده دروغ ببنده چرا؟ چون الله <سؤال> دین رو کامل کرده چون دین رسول الله صلی الله علیه و به نیاز به دروغ ما نداره دین کامل شده الله میگه دین کامل شده دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ الله الله میگه فمن ظلمی بالاتر دروغ بر الله جل و نیست من اضل ممن على الله کذبا ظلمی بالاتر است دروغ بر الله نیست دروغ بر رسول الله صلی الله دروغ باقیه بر الله جل وعلا هست. اینو بر باشیم ازش. از محبت ما به رسول الله صلی الله و که بکنیم در دفاع ازش و در اینکه نذاریم کسی دروغ به بافه دروغ بگه بر رسول الله صلی و آله. چون رسول الله صلی و خاتم النبیین و با رسالتش و وفاتش وحقت شده و الله هم جل وعلا دین را کامل کرده بر ما، دین الله بوده. الله در دینش و حفظ دینش نیازی به ما نداره. سربازانی بودن، حفظ کردن این رو بر ما، اون محدثینی که ثقه بودن. حفظ کرده نذاشتن کسی دروغ بگه و اینا سربازان حقی بودن که دین را به ما رسوندن ما اون چیزی که نیاز داریم الله جل و علا با اون سربازان حفظ کرده برامون همون طور که در آسمان فرشتگان گذاشته برای حفظ وحی تا انتقالش به رسول الله صلی اللہ علیه و سلام بر روی زمینم صحابه و بعد از اون تابعین گذاشت برای ما که دین را برای ما حفظ بکنند پس دقت بکنیم در دینمون دینم را از هر کسی نگیریم خصوصا اون چیزی که به ایمان و اعتقاد ما برمیگرده به ایمان و اعتقاد ما برمیگرده از هر کسی نگیریم از قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله بگیریم با 4 تا حدیث جعلی و دروغ کسی ما رو گمراه نکنه انسان گمراه میشه و شیطان هم حریص بر این که ما در گمراهی بیفتیم ما در فسق و فجور ما در دروغ و افتراه. بیافتیم شیطان که از یک در وارد نمی‌شه جایی از باب ریاکاریه جایی از باب کبر و غرور که در دل ما ایجاد بکنه جایی از باب خودشیفتگی و از باب تعریف و تمجید از خودمون از دیگری از این جماعت از اون دسته و گروه شیطان اس اقوامون میکنه و این قلوب را در ما پرورش میده از قلوب بپرهیزیم در کسی زیاده روی نکنیم و دقیق باشیم در دینمون دین ما هست که روز دین روز قیامت با اون دین جلو الله جل و علا يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء پروردگار و رؤ سفیدی می خای و من کان یرجو لقاء ربه لقاء پروردگار دیدار با الله می خای با رؤ سفیدی و من کان یرجو رجای رؤ رو در جلوه الله جل و علا فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فلیعمل عملا صالحا عمل صالح یاد جان بده نمازش رو بخونه چون چه رسول الله صلی الله علیه و آله خوانده روزهش هم همین طور هم همین درس و دینش هم همین طور چون چه صحابه یاد دادن از اونها یاد بگیره فین امنو بمثل ما امنتم به ایمانمون بعد نیمان صحابه باشه راه اونها را باید بگیریم و راه انبیای پیشی این عمل صالحه شریک عبادت خودش با الله نکنه در اون عبادتی که برای الله خالصانه انجام میده او را به یگانگی صدا میزنه هیچ کسی را شریک قائل نده هیچ کسی را نه عالمی نه شیخی نه کتابی نه دفتری نه هیچ کسی را شریط قرار نده. نگه فلان عالم به من گفت، حدیث رسول الله صلی الله علیه و هست برات یا نه. نگه فلان کس خواب دیده حدیث پیغمبر صحیح هست برش یا نه. هر حرفی میزنی با دلیل باشه. کسی هم حرفی زد از امور غیب، از احکام شرعی، دلیلی ازش بپرس. دلیلی از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله هست یا نه؟ نگ ان هذا الحديث دینن، حدیث دیننا، علم دیننا، فانظروا عم من تاخذون دینکم، نگا کونید اسکی وندينه تنرياد ميگيري اون هل برادري اسكي ميآموزيد جزاكم الله خير از اينكه وقتتون داديد بارك الله فيكم ورفع الله قدركم وتقبل الله طاعاتكم سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد محمد